چه شد زنگه با نام سوار گروگان ببرد از در شهریات چو در شهر سالار فرطان رسید خروش آمد و دیدی باقش شد از پختبان بزرگ کجا نام او بود؟ جنگید چه شد زنگه شابران نزد شافت پختار برخرد از پیشگاه برخواست از پیشگاه گرفتش به برخنگ و بن باقش گرامی بر پیش بند شافتش چوب این شرس نامه بداد سراتر سخنها برو کرد یاد سخنها برو اولا سخنها برو سخن کرد هم مل بیشتری بود چون اینا هستگزن عادی که نیست باید بچه ها تحلیل ببرن اگه آرام نخونی یه سوکی بیش نبرن مطلب رو نمی بعد آهسته خون که دقیق بتونن بفن چوب این نامه بداد سراسر سخون ها برو کرد یاد برو کرد یاد برو کرد دیاز. از آن نام افراسی ها دلش گشت پر درد و سر پر ذکا بپرمود تا جایگه ساختن گورا چون سزا بود سن بزا. شاختن سزا بود سن پیران بیامد تهی کرد جای سخون ران با نام برک از خدای و از خام گفت خام گفتار. گفتار او ز خوی بد و رأی پیگار او رأی, رای پیگار. پیگار او همین گفت و رخصاره کرده دو جم ز کار سیاه دلش پرز غم فرستادن زنگه شاوران همه یاد کرد از کران تا کران بپرسید کین را چه درمان کنیم وزین را جستن چه پیمان کنیم بدو گفت پیران که ای شهریار. انوشه بدی, انوشه, بدی. انوشه بدی تا بود روزگار تو از ما به هر کار داناتری به باید تا بر تواناتری. گمان و دل و دانش و رای من چنین آمد اندیش آرای من که هر کس که بر نیکویی در جهان توانا بود آشکار و نهان از این شاهزاده نگیرند باز به گنج زرنجان چه من ایدون شنیدم که اندر جهان کسی نیست مانند او از نهان به بالا و دیدار و آهستگی به فرهنگ و رای و به شایستگی هنر باخرت نیست بیش از نجات زمادر چونو شاهزاده نزاد به دیدن کنون از شنیدن به گرانمایه گرانمایو و شاهزاده مه هست. اگر خود جز این نبودی هنر که جان خون سر جان خونه که جان خون جان خون صدنامور که جان خون صدنامور با پدر. پدر با پدر بر آشفت و بر آشفت تخت و بغز آشفت و همی از تو جوریت بدین گونه را بدان پیشوان در بوبت مستری که باشد خریدار گنداوری گنداوری, گنداوری یعنی جان ز تو را تاج و تخت و خلاف به که تر سفارت خدایت برا ننیکون ماید زراق خرد که این کشور محتر رو بگذرد و دیگر که کابوس شد پیر سر ز تخت آمدش روزگار گذر سیاوش جوان است و با به دو ماند, ماند این تخت مهی محی, محی. تو را سردنش باشد از مهتران. سر او همان گرد، گرد از صوب اگر شاه بیند به رای بلند، نبیستد یکی نبیست نبیست نبیست نبیست نبیست نبیست نبیست نبیست نامه پندمند چون نوازند فلزند را، نوازد جوان خردمند را یکی جای سازد بدین کشورش، بدارد صداوار اندر خورش به این دهد دختری را به دوی، بدارد با ناز و با آبروی. مگر کو بماند به نزدیک شاه کند کشور و بومت آرام گاه وگر باز گردد سوی شهریار تو را بهتری باشد از روزگار سپاسی ببد نزد شاه زمین بزرگان گیتی کنند آفرین براساید از تین دو کشور مگر بدین دین آوریدی درش داد گرد زداد جهان آفرین این اینسهزاد که گردد زمانه به دین جنگ راست چه سالار گفتار پیرانشنید چونان هم همه بودنی ها بدی بدی پسندیشه کردن در آن یک زمان همی گاشت بر نیک و بد بر بر, بر نیک و بر نیک و بد چون این داد پاسخ پیران پیر که هستین این سخن ها همه دلپذیر ز آزموده گزیده مهان تماماً به تو نیست در جهان ولی شنیدم یکی داستان که باشد از بدان رای هم داستان که چون بچه شیر نر پروری چه دندان کند چو دندان کند چیز کی پروری چو بازور و با چنگ برسی زدون به پروردگار اندر آوی زدون به دو گفت پیران که اندر خرد یکی شاه گنداوران بینگرد کسی از پدر کجی و خوی توی بعد نگیرد از او کسی که از پدر کجی و خوب یه بعد نگیرد نگیرد از, از او بدخویی که پیزه نبینی که کابوس دیری نگشت چو دیری نگشتو به باید گذشت سیابوش بگیرد جهان فراخ بسی گنج بیرنج و ایوان و کار دو کشور تو را باشد و تاج و تخت کیابت چونین کیابت, کیابت, کیابت چونین بطر مگر نیشبه بسیار من مطلب رو براتون گفته بودم پیران که پیران پیشنهاد می‌کنید که اینو با محبت رو نام پذیریم و این اونجه به احرولی روابط تو کشکر و افراسی ها رو رو گفته بودم بگو. حالا جزگیات رو به جای اینکه که از زبون الکن بنده بشنبین از خود استاد توس بشنبین میگه که بشد زنگه با ناور صد سوار گروگان ببرد از در شهر صد تا سوار بشتدن گروگان ها رو برداشت و برد از در شهری ها یعنی از درگاه سیاهش چه در شهر سالار ترکان رسید خروش آمد و دیده بانش بلید. شهر اینجا یعنی مملکت گفتم چندین بار یه معنی شهر مملکت ایران شهر یعنی کشور ایران چه در شهر سالار ها رسید یعنی به مرز کرسید، به, به امریکت کرسید. میگن که اونجا دیدوان داشتن از جاده میرن که معمولا از بیافون که نمیرن از جاده میرن، سر جاده پست دیدوانی بوده دیدوان میدونه و خبر میدفورن با وسایلی که داشتن که کسانی دارن نیم، سپاهی دارن نیم چو در شهر سالار ها رو رسید، خروش آمد و دیدوانش دیگه فردوسی اینجا نمیگه که بعد دیده با خبر داده و بعد رفتن و بعد گفتن قرمان اومده و اونو معلومی دیگه اینا بلا فاصله میگه که پذیله شدهش ببینید یکی از صفات خیلی مهم کلام اجازه، اجازه. اصلا سه روش برای چیز داریم سه روش برای بیان مثلت یکی ایجاز یکی که یکی اتناب ایجاز یعنی با لفظ کم معنی بسیار رو گفتن با کمترین لفظ بیشترین معنی رو گفتن تمام زربال مسلا همتون میگه که نری حاجی حاجی مکه چارت کلمه یعنی وقتی رفتیم ما رو فراموش نکنید دوباره ببینیم خبر بدید سری حاجی حاجی مکه یا مثلا جواب ابلهان خاموشی است بس یا هر چیزی که از اینه اینا تمام اجازه یعنی معنایی که این چهار کلمه با خودش حمل میکنه خیلی بیشتر از بس معنی اون رو دیگه هم معلوم شد با این دیگه یکی مصاباته که الپاز مصابی معانی باشه تو کتاب فلسفه یه به آقای مردی هست مرد درجه یکی اینا رو هم میگم که به گوشتون اقل خورده باشه به نام افضل دین کاشانی مال قرن شیشون فیلسوف. رساله های نوشته بنام رسائل افضل دین کاشانی بعد منطق و فلسفه و این این نوشته این طوریست که یک کلمه شاید اگه برداری بنزه اون یک کلمه مطلب میفتید و این خیلی عجیبه در روزگاری که بیشتر کلام و دراست میکردن مقدمی میشیدن میکردن،, میکردن این افضال دین اصلا تعجب یعنی یک جمله فقط اولش داره که یک یا دو جمله یا در یک جمله میگه که سلام به خدا و رسول یا در دو جمله که حمد خدا یکش یک شب بعد پیغمبر بلافاصله میره سر مطلب میگه این رساله سر این باب و شروع میکنه میگم یک کلمهش نمیشه برداشت اینو بهش میگم روش مساوات که هر لفظی رو برداری مطلب دیگه یعنی الفاظ بیش از معنی باشه هر کدوم از اینا هم جای خودش رو داره این هیچ درست بعد نیست سر این کلاس مطالبی که بنده میخوام حالیش شما بشه و شما اصلا نمیدونید و برای اول بار دارین میشنوید این اگه 5 بار 6 بارم تکرار بشه بهتره. هی توضیح داده بشه در اطرافش هی گفته بشه هی چیز بشه ولی اگه بنده این مطلب بخوام برای استا... یکی از استادای عدب فارسی بخونم بازم همین عرفات بزنم اگه عربات بزنم میگه این مرد عقلش فارسنگ میبره نور همین میدونن این کسانی که همین میدونن دو جمعی نداریم توضیح. این که گوینده واقعا تحجه داشته باشه که مقام چه مقام نیست شما دعوه و مرافع داریم میکنیم با کسی یکی وقت جمله پزاخون ندارین که با یه نیم بیت حق میشه میتونیم جواب هفت هست میگهیم خاموش وقت نداری که این دو ساعت بی که آفنا تو خیلی بلان این هر روشتی بی خود بود من مثلا دوز نیستم که میگی تو دوزی نه هم تو عوض این حرفو یک کلمه هم. یا گفتم سر کلاس باید به تفصیل اگه به تفصیل نباشه شاگرد نمی فهمه در مسائل علمی هم باید باشه نه حرف زیاد بزنن، نه کم ب که دو شعر خوب یکی از خصوصیات چیه اینکه اندک لفظ و بسیار معنی باشه اجازه باشه این, این مثنوی مولانا به این گندگی اجازه داره یعنی بسیاری از یه بیتا یا دو بیتاش هست که باید یک رساله در سر نشه میشه وقتی که مولانا خیلی هم هفت، دو سه هزار باید باقی میمیده یعنی خیلی بیشتر از چهانوان خیلی روز. آدم فکر مونه که این چقدر پر حرفه که راست ولی نیست بسیاری شعراش توضیحات زیاد میخواد تا تازه فهمی که بشون حافظ همتون حافظ میگه بیا حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی یه بسیار به لفظ اندک معنی بسیار خیلی هم ه جاها رو بلده که کجای مطلب قیچی کنه ولی اینکه ملال نیاره و اینو یه شاعر دیگه این ظرافت ها رو بلد نیست در نجه شما میکنیم این شعر خوبه عیبی هیچ نداره اشکالی هم نه. اما کسی میشه نبینیم؟ نمیده جلو نمیده اینو میکنیم؟ نه اگر اگر شما این کتاب بزنید رقون بخونید که یه ناراحتی باید خوندنش نداشت اصلا زمینش نمیذاریم تا تماما شد این خوصیتش الان میگه دیدوان رو دید بعد میگه پادشاه آمد استقبالش باقی مطلب رو پذیرش پذیره شدش پهلوان بزرگ کجا؟ کجا منیه نام او بود جنگی توبارگ اسم باز اومد استقبالش برشش بود پیش شد باز نمیگه که اومده رو خیلی خوش آمد این قدم بشه شما گرشتین رو نه رو نمیگرسید پیش شاه چشت زنگیش آبران شاه اینجا آقا تفسیر میگه افراسیاب دلپاش پاشت بلند شد بغلش کرد احوالشو بخورسید پلو خودش نشوند چون اینا کلمات نیست که هر کدومش حساب و کتاب داره و معنی داره سریع خودش چو شد دنگه نزد شاه سفهدار برخواست از پیشگاه گرفتش به بر تنگو باختش گرامی برای خیش شاختش نشاختن همون نشاندنه گفتم و نشاختن و نشاستن هر دوش نشاستن متعدی نشستنه علف تعدیه دو دفع سرین کلاس گفتن نه یده. یادتون را بود. نشستن، نشاستن یعنی نشاندن و نشاختن چوبنشاست. بنشست اگه بخونیم بنشست با شاه این باب معنی خودشه یعنی با هم نشست ممکنم بخونیم چوبنشاست بنشست با شاه نامه بداد یعنی به شاه با باب معنی به هر دوش میشه ولی بهترین که بخونیم چرنچست با شاه نامه بداد. که همین بار استفاده این یه اولی که در که در شعر فارسی با به و پ به معنی باب کار. تا دوره حافظم در نمازم خمه تو با آیات اومده. به یادم تو به با شاه باشاه نامه بداد سراسر سخونها بر او کرد یا، اون چه رو سیاه باش پیغام کرد و که بگه همه رو که این گروگانو، و پادشان اینجور کرد همه هم؟ رو گرد بپیش چید از آن نامه افراسی ها دلش گرد گشت پر درد و سر پرسه تا نراحت جده خودش و هم برای این بچه این چه بود بفرمون تا جایه ساختند برا چون سزا بود به این از که اون در جایی در ما تواقع منزل بدن اینجا نشوندن دیگه معنی اقامت کردن تا وقت که جواب بدن نه باید باشه که حدیره میشه اون رو نشوندن مثل اینکه شما الان میگین که من خیابون کالج میشینم یعنی نشستن و این اقامت کرد این نشاختن دومی به اون معنی وردنش در مهمان سرایی که متواقه شان شاد شاد که شاد که خوننشه و خیلی ناراحت شد دیگه این نشسته بود که خب تمام بشه در سول و آشپزین زده بود آدم کنه میشه طرف جنگ بود پیشنهاد آشتی هم کرده. خیلی هم معقول هرچون هم گفته بودم گفته بودم چشم گفته بود گروگم برسیم چشم چشم هم هم فلا منتظر بود که دیگه نارکی نباشه بعد اون وقت میدینه که خب این بچه هم که اومده اینجا این هم که حسنیت داره چیزی نداره و منتظر یه چند این هم نبوده که باز دوباره در سرقبی بشه در سر بفرمو تا جاگه ساختند و چون سزا بود بنشاختند یعنی پرسدنش هزیرایی بشه این جای بعد پلوت کرد و پیران وزیرش رو صدا کرد که مشکلت کنید چون پیران بیامد توی کرد جای یعنی پلوت کرد سخون راند با نام ورکت خدای کت رو گفتم که به به معنی کت و کده به صورت کت پیشاونده به صورت کت در اول کلمه میاد مثل کت خدا و کت بانو کت بانو یعنی بانوی خانه یعنی زنی که شوهر کرده یعنی اتاق برای خودش داره و مدیره اون اتاق خانه است کت خدا هم یعنی آقای خانه که البته اینجا من یه بزرگتر میاد. مهتر به صورت کدم میادی در میکده و آتش کده و دانش کده و بازم بازم میکده یعنی میخانه اله آفه سخن رانوان نام برکت خدای از چی؟ زکابوس و از خام خامگفتار او زخوی بد و رای پیکار او که این مرکه هنس جنگ کنه با ما همه این همی گفت و رخصاره کرده دو جم همهش تو هم بود سکار سیابش دلش برزه پم فرستادن زنگی شابران همه یاد کرد از کران تا کران یکه جزئیاتو به تفصیل برای پیران گفت همه جوزیات هم گفت از کران تا کران چرا؟ من اکه او هم در جریان تمام جوزیات قرار بگیره چون بعد نفات که خاله چکا بعد همه چی رو میدونم. بعد چه همه گفت بپرسید که این را چه درمان کنید چکا کنیم. که این راه جستن راه جستن کدومه؟ چه نه؟ راه جوستن چهاره کردن؟ نه نه من خوزش خالی کنیزی نه ها کابوس همیگی جایی اون که من منظوری ندارم <تصفيق> <تصفيق> من. که این را چرا درمان کنیم اوز راه جستن چه پیمان کنیم راه واسه چی بگیم بگیم بی برو بگیم راه نیست چکار کنیم به دو پیران که ای شهریار انوشه بدی. بدی بعد مخفف بادی خیلی هم در شانه محمدی یه نو یاد خواشه که بدو بوشا. همیشه بدی همیشه تو دور دست بدی بدی اونی که بدی بدی مخفف بادی بادی هم گفتم براتون الف دوها رو که گفتم گفتم یه نه <سؤال> <الصال> <صفح> ارز کنم که فعل مزارع روم روی روید شوم شبیه شود کنم کنی کنم راهی در سه شخصش قبل از زمین دال یه علف میوردن کنت میشد کناد روید می میشد روید بوید میشد بوید رسد می شد رساد اینا در مقام دعا بود مثلا حافظ می که اگر چه اگر چه من، یعنی بخ... گرد برنگی اختیزه هستی من یعنی منو تبدیل به گرد کردی اگر چه گرد برنگی اختیزه هستی من قباری از من خاکی به دامنت مرساد. یعنی انشالله که هیچ گردی از این وجود من به دامنطن نمیشیم. مرزات و دعاست. بود میشه باواد به سیقه این دعا. باواد مخفف میشه، میشه باواد. این توی زنده باواد نمیدم، فلان این زنده باواد بوده و در کلام مخفف شده باواد. باد بادی بادی مخفف شده شده بدی انوشه هم اتفاقا کلاس پیش کسی پرسید و ما گفت هوش و یعنی مرگه انه هوشه یعنی بیمرگ بنابراین این کلام دعاست انوشه بدی یعنی جاقید باشید تا با تو از ما به هر کار داناتری هو این اولا به مناسبت کوچیکی کردن پیش شاه اعلیحضرت بهتر میدونه اما یه چیز دیگه هم هست یه حدیث یا مسئله من نمیدونم یکی از ناس میگه ارباب دولت ملهمون یعنی رؤسای دولت‌ها و فرمانروایان کشورها بهشون الهام میشه این رو به این دلیل میگن آبود دوگله ملهمون چند بار اینجا گفتیم که پاتچه ها باید فره ایزدی داشته باشیم بنابراین سلطنت رو یه ودیه الهی میدونستن درسته؟ خب تا وقت شما فره ایزدی داره یعنی مورد تعیید خداست باید راه درستم هم خدا بهش نشون برید ترجم میکنی؟ یعنی این که می که داناتره. این فقط تعارف خالی نیست به این عنوان که طولانی بکنه خیر چون معتقدم که سلطنت ریشه الهی داره و جنبه الهی داره و پادشاه تا فرعی زدیشون از دست نداده پادشاهه وقتی که از دست داد دیگه پادشاه نیست میوفته بنابراین مورد حمایت حقه به اگه اینطور باشه باید مصلحت هم رو الهام بکنه این اینکه شاه داناتره فکر نکنید که همین به دو گفت که شهریان انوشه هفتی تا وقت تو از ما به هر کار داناتری به بایست ها بر بایسته یعنی لازم دیگه بایست و با بایسته یعنی لازم بایست ها یعنی به چیزهای لازم تواناتری <تصفح> حالا بعدش میگه اما چون از من پرسیدی میگم گمانو دلو دانشو رای من چنین آمدندیش آرای من میگه من از گمانم از دانشم از قلبم از معصم اینطور فکر میکنم که هر کس که بر نیکویی در جهان توانا بود آشکار نهان از این شاهزاده نگیرن راز ز و زرنج اونجا آمد میگه من به ذهنم اینطور میرسه به دلم اینطور میرسه به عقلم اینطور میرسه که هر کس هر چی داشته باشه این آدم آدمیست که شی رو ازش کسی دریغ نمی این یعنی شخصیتش کاریسمتی که در خیلی هست که هرکس که بر نیکویی در جهان توانا و بعد آشکار و نهان هر کس از این داده نگیرند باز نه گنج نه رنج و هرچه هرچه لازمی دنبالش هم تعریف سیاهوشه من ایدون چنیدم یعنی این شنیدم چنین چنیدم من ایدون چنیدم که اندر جهان کسی نیست مانند او از مهان مهان یعنی بزرگتران بزرگان یعنی از بزرگان این آدم مانند نداره هیچ به بالا و دیدار و آهستگی به تانت و بقا کسی به فرهنگ و مشی اطلاعات راوی و عقلش بشایستگی هنر با اخریت نیز بیش از نژاد میگه نژاد پادشاهی که داره از دو طرف اجل باشه. مادرش هم که تون میشه کردن گفت من خاطونی ام باعثوی پدر فریدونی ام اینا رو گفت اینه که مادرش که نژاده است پدرش هم نژاده است نژاد داره نژاد و حسب به اصطلاح اینکه من پسر فلان کسام فلان کسام یه ایده تریه هوشمندیه حسن هوش اینه که اگه آدم شایسته باشه خودش اون حسبم به چیزش میاد به کمکش میاد میگن خب بله تو پسر زکریا مرده فروغي هستی باید این خوبی باشی از اون پدر غیر از این عمل نمیاد تا زمینم خب این جز افتخارات شکن پسر زخارمک حالا ما این پسر زخارمک مثل هم بیکاره و لات و بدبط بود چی میگن بهش؟ میگن خاک بر پسر تو پسر زخارمکی از اون پدر ام اون تو خر پیده شدی که نجات نه ها برش خوب بد هم هست. این است که میگه که هنر با خیرات نیز بیش از نجات، هم نجات داره، هم هنر و خرد داره. س مادر چون مشاغل داده نزدی. به دیدن کنون از شنیدن به هست. گه ببینیش از اینکه از بشنوی بهتره بیشتره، آدم ها دو جوان. یه جور کسانی هستند که ازشون تعریف رو وقتی می‌بینیم می‌بینیم این هم نیست که می‌گفتن یکی دیگه هم است که بعض اینکه دیدی دیدیم می‌دونیم کم گفتن از این آدم هم. چه آدمی؟ حافظ میگه که گوگن خلاقی که تو یوسف سامی چون نیک دیدم به حقیقت به هزام روح سلطنت و آنده‌ی الهی است در روح تو پیداست آن راز نهان یه بیت خیلی قشنگ دم داره میگه گفتی که دهم قامت و جانت به ستانم قامت در برابر جون گفتی که دهم قامت و جانت به ستانم ترسم ندهی خانمم جانم جانم ارز کنم که یک کسانی اینجوری یک کسانی هم هستند که به عکس من این باز ضربانسر عربی رو مینویسند برای اینکه این تو شعر فارسی وارد شده باید به گوشتون خورده باشه. میگم تسم عبل معایدی خیرون من هم تراح. این شخص این مثال میگه اگر از معایدی بشنرید بهتر از اونست که یعنی شنیدنش از گیدنش بهتره یعنی میبینیش بگی کنی که اون که گفتن نیست این پایین تره و این خیلی معروفه این مثال شنیدن از معیدی بهتر از دیدنشی این تو شریع یه عجمیزا اومده میگه یه ای داره در حجب وزرای مملکت میگه وزرها از چه دیده می نشدن راستی مردمان دیدنی هن. بعد میگه نی قلط گفتن این معایدی ها دیدنی نه همان شنیدنی هن. میگه میگه بعد آخرش خیلی ببخشیدید قضی خلاف عدبید میگه وزرها حکم زرته را دارد که شنیده شوند و دیده <mare> ah, این از دیدنش از شنیدنش بهتره یا شنیدنش از دیدنش بهتره در ادب خیلی به کار میره همچی که میبین به دیدن چیه دونه شنیدن کدودمانان دیدن نیست. هیلو خوب. ممکنه وقتی شنیده باشی وقتی ببینی ببینی که اون اون نیست که شنیدی. یا بالاتره یا پایینتره. هر داش میشه دیگه که شنیدن که بودمانند دیدن درست. ولی یه وقتی شنیدی یه کسی بهم میبینی می‌نیا این اونطور که میگن نیست. که دیپ پایینتره. یه وقت دام شنیدی تقریبا میبینیم میبینی که خیلی خیلی بالاتره. و خاطرش میشه شنیدن تیواد مهندس به دیدن کنون از شنیدن به هست گران مایه و شاهزاده مه هست یعنی بزرگی بعد میگه که حالا خودمونیم اگه همین یه هنر داشت که واسه کشت خون 100 نفر از تاج تخت گذشت کرده باشه چی رو پیده میکنیم این دنیا امروز که تاج تخت ایران و بذاره باره که صد نفر آدم که در اختیار بوده اگر خود جزینش نش نبودی هنر هنر رو قبلا گفتم هونره یعنی مردانگی نیکو یایتونه هست اگر خود جزینش نش نبودی هنر که زان خون صد نامبر با پدر براشفت و با پدر براشفت بگذار تخت و کلا همین از تو جوگت بدین بونه راه به دان کشور اندر بود نهتری که باشد خریدار گنداوری میگه این تخت و کلاه رو گرشت پشتر از تو راه میخواد باشو بکش و در اون کشورت بادشاییست که دنبال جنگی گنداوری این جنگ. ز بحر تو را تاج و تخت و کلاه به که ترس پارد خدایت برای میگه. میگه برای جنگ با تو تاج و تخت و کلاق میخواد تو داری خودش خاشو بیاد جنگ نه ببخشی به دان کشور اندر محتری که باشد خرید زه تو را میگه به خاطر تو تاج و تخت و کلاه بذاشته و خودش داره میاد اونم سپوزه به پایین تر از برو دستتر خودش داری میان چیجون؟ آره؟ آره؟ نه نیکونو ما یاد زراح که از این کشور ای مهتر خوب بگذره میگه درست نیست خوب نیست که بیاد و از این کشور رد شد بره یه جدیگه بعدم میگه یکیش میگه اولاً که صحیحی شاهزاده ایران میاد تو اینجا نیگرش نداری و محبت بهش نکنی و به خیلی خوبیه برو هر کسی و هر کسی بگه ها راه من اینجا برم و من اون خوبی اون شهن توی که بادشاهی و اون که شاهزاده است و اون شاهزاده میگه خوبی خجون مید. یک و دیگر که کابوس شد پیرسر پیرسر یعنی درش سفید گفتم براتون که پیر به منی سفید موست نه سالکردگی منطقه سفیدی مو با سالکردگی ملازمه داره اغلب همیشه ممکنه بچه از مادر به دنیا بیاد موش سفید بشه بازم میتونه نشکن پیر سر ولی اینجا تیرسر شده نیستن، نیازش گذشته دیگه. مثل بنده شده. و دیگر که کاووس شد تیرسر. ز تخت آمدش روزگار رو گذرد، تازه ویزا کرده بودی. <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> سیاوش جوان است با فرحی، فرای رو که انشالله شاءالله گفتن. این سیاوش فرای زدی داره، سیاوش جوان است با بدون ماند آوین تخت مهی وقتی که آغوز رفت ممکت مال دیگه اون سر جاست تو را سرغنش باشد از مهتران اگه رفتار خوب مکنی بزرگان این روش رو دیگه افراسی ها خوب رفتاری نکرد با این شاهزاده خود شاهزادم با تو سرسنگی میشه سر او همان گردت از تو گران موافق شهنش اگر نکنین با آتش میشه اگر شاه بیند این بیند یعنی مسلحت میدونه خیلی جا همی در این کار چی میبینی؟ یعنی مسلحت چی اگر شاه بیند به رای بلند نویسد یکی نامه پندمند به سیاه بشه چنانتون نوازند برزند را نوازد جوان هربانی همونش برده تو پندمند یعنی نامه پند مسیح, مسیح. چونانتون نوازند فرزند را نوازد جوان خیرتمند این که مثل اینکه بچه شادم نوازش میکنه این جوان <تصفيق> که این خوبی و این بزرگی را در حق ما کرده نوازش میکنه. یکی جای سازد این کشورش اینجا نگرش داره بس نهایت عزت رو اتراف خیلی میدونید محصومه که کسانی که آدمای های جاسنگین وقتی از کشور پرچین تبدید میشدن یا به دلائلی میرفتن دیرون <تصفح> کشورای دیگه اینا رو پناه میدادن و متابق شعنشون به پذیره می کردن ازشون و حتی گاهی البته این بستگی داشت به روابط اگه روابطشون بد بود محسوسا بر دهنکجیه به اون طرف خیلی به شانو و شرکت این اضافه می کردن. دو تا سید عرب بودن که با م... م... م... متولی حرم عبولفض یا امام حسین بودن دولت عثمانی اینا رو تبعید کرده بود به اینا ناسد می شود ولی دهنکجی به اینا اینا رو نایب تولیه رضا کرد و معروف بودن به نایب عرب که این ثابتی ها ثابتی و عرب ثابتی و ثابتی و اینو بچه های اونده شعن و شوکت دود برای که دهنگجی کنه پاچه ها یکی جای سازد بدین کشورش به بدارت تذابار اندرخورش مطابق شعنش هم با رفتار کنه به آین دهد دختری را بدون یه دخترش هم بهش بده؟ برای اینکه پیوستگی خون پیدا کنه قوم خیشی به اون سکتیه به ده آین دهد دختری را به دوی بدارد با ناز و با آب رو مگر مگر یعنی شاید اینجا قیده ترگیده مگر کوب بماند به نکی که شاید کنت کشور و بومت بوم گفتم به منی سرزمینه کشور و بومت آرام را با. وگر بازگردت توی شهریار میگه خب بلکه این اسلام شه ممکنه برگرده ولی بس برگشتن نیکیه تو فراموش نمیکنه که به حال بشر الانسانا عبید و انسان برده نیکیه هر کس وادم نیکی کنه یادش نمیده اینست که میگه اگر برگرده طوری نیست اگر بازگرد از سوی شهریار تو را بهتری بازد از روزگار سپاسی بود نزد شاه زمین بزرگان گیتی کنند اگه فرض کنیم بره پیش پدرش هم پدر سپاس گذار میشه که تو اینو با عزت و اعترام نگه داشتی هم بزرگان تحسین میکنند که بحث چه رفتار جوان مردانه خوب کرد پراساید از چین دو کشور مگر میگه مسئله بازم مسئله دو نفر اون جوان یا تو یا شاه ایران نیست شاید این دوتا مملکت از چین آسوده بشنن و اینقدر خونه همگیار نریزن به دین آوریدی درش دابدن میگه شایدم اصلا خداوند مسلحت دیده برای همین این آورده اینجا و این وضع پیش آورده که این کینه از میان برخیزه زداد جهان آفرین این سزاست که گردت زمانه بدین جنگ راست از داد پروردگارم سزاوار همینه که جوزگار از این جنگ چیز بشه آسوبه بشه پادشای چه که میکنه فکر میکنه درسته که پیران وزیر او مورد اعتماد مهمه هست هرچی هم میگه به نظرش صلاح و مسلحته در درجه اول افراسیاب و در درجه دوم اون میرسه میرسی من شاهه فکر میکنه اتفاقا آخر قضیه رو میبینه همه اول همه اول آخر قضیه رو میبینه تو سالار گفتار پیران شنید چونان هم همه بودنی ها بدید اونچه درواز خودش کرد، پس اندیشه کردن در آن یک سمان ببینید اینجا همه جزیه ها میشه اخلاف اونجا که اونجا خوش آمدید با اینجا خورمان شما خورم میمون قدم به این بازی ها اونان مهم نیست. ولی اینجا میگه من که افراسیاب باز می‌کنی این حرف‌های به این قشنگی رو از پیره هم که خوب بود باز به فکر کرده پس هم در آن یک زمان همینی گاشت گاشتنن یعنی گرداندن غلف تعدیه همینی گاشت بر نیک و بر بد گمان فکرشو به نیک و بد این فسره میگرد که چیز دارید چون این داد پاسخ به پیران پیر که هست این سخونها دل و زدی همه دل فضید گفت حرفاتی زدیه همه حرفای خیلکونی تک کار آزموده می‌خوان، میخوان تو نیستن در جهان از بزرگان کار آزمودانه کسی مثل تو نیست رفت افراسی ها مطلبش تمام میشه با همین دو بیران میگه آن با بچه دشمنی هم بلان اینجور شنیدن خیز چه میدونش نامشه پیران باز از تز خودش به فاهم گفت پیران که اندر خیرد یکی شاها گنداوران فینگرد میگه لطفا علا حضرت یه توجه بکنم به این مطلب که آدمی که بچهی که پدرش اون آدم مزخرفه و اونقدر کند خوب و بد و چیز هست از پدرش اینو نگرفته چطور ممکنه بعد بتونه کار برد میکنی؟ نمیشه خوبه خوبه بعد اصلا از پدرش هم نگرفته تو دو گفت که اندر خراتی که شار گوند آوران بند کسی که کس از پدر تشریع خوبی بد نگیرد از اون خوبی بد کیس بزد یکی نگه نشان در این مورد بیجاست برای اینکه که این از پدرش خوبی بد نگرفته حالا بعد خودش ممکن خوبی بعد پیدا کنیم که نمیشه نبینی که کابوس دیرینه گفت نمید کاغوت پیش شده چون دیری نگشتو به باید گذشت یه نقطه زر اینجا موجود داره پهلوان من هماسی گفتم سهن درشون نداره خود افراسی ها وحیان از کاغوت بودیدتره به دلیل اینکه وقتی روستان رفعه که قبار پدر که کاغوت بیاره اول دفعه رو گروه شد و افراسی ها بلندش کرد سر چنگ که کمربند افراسی ها پاره شد زنجیر اون بس بست اون زنجیر کوسیخته شد افتاد زمین و در برده شد که مرد و که میگه پیش و افراسی ها پا تا دوری که ولی اینجا چون این کار پیر شدن به درد میخورد در سیر داستان کابوس رو که اون هم جوز و اتفاقاً در چیست در هماسه هندی در معابرتت بسیار اسم و رسل اونجا برحمنه البته شاه نیست خانه همجون قدرت های مافاق رو چیست رو خیلی مفصل. یه بابایی هست استاد فرانسوی که دو سال پیش مر به نام جورج دیومزیل این اه, چیز میکرد همین ادب تطبیقی و, و اساتیر تطبیقی و خماسه های تطبیقی دنیا آنها کارا شد به فرانسه میرد ولی حتما چیزم شده حتما کتابش ترجمه شد خیلی استاد در جیه که استاد کولیجو فرانس بود اشتاد نوت سال شمید مور این یه بحث به مقایسه کافوس در محابرته تماسه هندی و کابوس در شاهنامه بسیار چیز خوندنی قشنگی سپوک و اسم جورسی مایی این دو مزیل خیلی در این مقایسته اینا چی داره من فرنسه رو دارم اینجا ندارم اگه داشتم میعوردم یه خوده میگفتم برای ولی ندارم اینجا درستان ولی اینجا این بسیش هست و خیلی هم جالبه اینو نگاه تو که علاق مند شدی به سیاوه شد و نفتی بسیش رو میخونی اینا اینو پیدا کنی دومیه زیل رو دارم خیلی خیل ارسانم که نبینی که کافوز دیری نگشت چو دیری نگشتو به باید دوزن شده دوزن باید باید بردیر سیاهوش بگیرد جهان فراخ بسی گنج بیرنج و ایوان کا دو کشور تراب باشد و تابوتن میدونی که در علم حقوق میگن قمغیش سببی به منزله قمخش نسبی است و در همون حد از نزدیکی است یعنی داماد در حکم پسر آدم عروس در حکم دختر آدم مادرزن در حکم مادر آدم پدرزن در حکم پدر آدم و همین دلیل هم مثلا حتی در انگیزی هم میگه مادر قانونی یعنی و حتی قانون مادرشون هم خود داره در اقل کمه مادرشون از نظر نهزی میگه خب تو اگه دختر تو بدی به سیاوه هست میشه در خود پسرت میشه بچه که دخترتو بذارد نوهی توه نوهی پسرت بچه اونم نوهی کام بسرد میگه به این ترتیب دومن بکرد مکنی متعلق توست بگه دو کشور تو باشد تو، تاج تا تخت که یا آفت شونیم کنیم کنیم کنیم کنیم توشوند. نه میگه به طور کلی به طور کلی اصلا این قانون زندگی است که همیشه سالکرده ها به مرگ نزدی کردن تا جوان ها البته این چیز نیست یعنی قاعده قهطی نیست ممکنه یکسی یک جبانی که یه چیش اون مطرح نیست برای به طور کلی روش عادی این است که پیرا به مرگ نزدی کردن یکی زندگیشو ی نکنم ن دارم این نیست بیچاره پیر شده خیر دیگر نمیاد بگو بگو گفتم در حماسه که من برای همین من ایراد گرفتم که آفرین کودو اضافه است من که خودم این ایراد گرفتم ولی چی گفتم این در هماسه پیری نه اثر نداره ولی اینجا پیری کابوس اسپنات می‌تونه من خودم گفتم حالا اینکه که گفته کابوس به زود می‌میره یا نه می‌میره؟ نه این نه یا باشم سرش به باد می‌ره ود بخش جنگ بره سریه نظر؟ مثل او؟ چون؟ او قومینه چوشنی افراسیاب سخن یک رای با دانش افکند بند دبیر جهان دیده را پیش خاند. زبان بر و سخن بر فشاند نیکو که برنامه بنها ده به انبر سر خامره را کرد سر خامه را کرد, سر خامه را کرد. پس. پس جهان آفرین را ستایش کرد بزرگی و دانش نمایش کرد کجا برتر است کجا یعنی کجا است یعنی خدا کجا از مکان و زمان بدون که رسد بندگان راه گماز خداوند جان است آن اخترت فرد، سرتمند را داد جو پرورد از او باد بر شاهزاده درود خداوند بوپال و شمشیر و خو خداوند شرم و خداوند باد ز بیداد و کزری دل و دست پاک شنیدم پیام از کران تا کران ز بیدار دل زنگی شاوران همین شد دلم من جان شاوران که من جهان چنان تیز شد با تو اندر نهان ولی گنج بیتی جد از تاج و تخت چه جوی از خردمند بیدار بر تو را این همه ایده را راست هست. اگر شهریاری رو اگر شهریاری رو کرد می گم اینو اینجا برای حاضر همه شهر توران برندت نماز مرا خود به مهر تو باشد نیاز تو پرزند باشی و من چون پدر پدر پیش پرزند بسته کمر چنان دان که کابوس بر تو به مهر بران بونه یک روز نک شاد. چه؟ چه؟ کجا من گشایم در گنج و در سپارم تو را یک کاری که من با تو میکنم یک روز کابوس پاهمولهی که من میخوام با تو بکنه، به مهربانی یک روز کابوس با تو این رفتار نداشته بل. بدارم بیرنج فرزندگار بگی تی تو مانی ز من یادگار تو بر کشورم بگذری در جهان نکوهش کنندم چهان و مهان بگی نمیزنم بگذری یعنی بری بری بیرون بر وزین روی دش... دشخار یا بی گذر مگر زدی باشد آئین اینفر بر این را قیدا نبینی زمین گذر کرد باید به دریای چین از آن کرد یا از آن تو حمیدت و به خوبی بساز میگه راه هم نداره از تو را که رچی و گرفتاری از سر دریای چینه هم. و همینجه باش. بعد سپاه و دز و گنج من دز و گنج من آن کو برفتن به خانه نباید جز. چرا آیدت آشتی با پدر سپارم تو را گنج و زرین کمر کذیدر به ایران شوی با سپاه نبندم به سوزیدی بر تو را نماند تو را با پدر جنگ دیر تو شد مگر گردد از جنگ سیر گر آتش ببیند پیه شست و پنج رسد آتش از باد پیری به رنگ تو را باشد ایران و گنج و سپاه ز کشور به کشور به شاهی کلا قذیرفتم از پاد یزدان که من بکوشم به خوبی به جان و به تن نفرمایم و خود نسازم گذن به اندیشه دل را ندارم به بند چون آمه به مهرندرون اندر آورد شاه به تا زنگه نید خواهد به زودی برستن ببندد کمر بسی خلعت ها راست با سیم و زر یکی اسب و زرم ستا می گران بی آمد دمان زنگه شاوران چون از دیکه تخت سیاوش کسی چه پرسید دو دید و شنید بسیار بسیار مطلبش که روشند دید اونا شوط عاشق از مادرش راه تو ایران میاد. قانی شوط بعد به کوتن شاه داده اون دشمن که اون طور گلی میگه که آید. بعد چه شی رو دشمن علی فقره شدین، دشمن جنگ میزه. این شو از سر مهره و این آدمیش که این طور این طور این, این از اون موارد نیست. افسشان قانی میشد. به هر حالم دارید این مساله حل می‌کرده یعنی یا عوض را میداده بره این یا عوض را میداده که اصلا محال بوده یعنی تو زشت بوده یا این که میگفته بمون دیگه بعد. هرچه که آقا بستش بردر میاد بگه الان واقعا خود کنان افراسی ها نظر بعد ندارم تاست تاست میاد در کسی که رهشت میبره میاد در میون امیدوارم برستیم که بخصیم و این راوض را تیره میکنه بله دخترش هم بهش مید دیگه این ها نیست برای این حالا سیاوهش میره اونجا رو باید جنگیست که اصلا مسئله از جنگ وجود سکتا... پیش. پیش از اینکه مسئله جنگ که وجود بیاد سیاوهش پشنه میشه و این ماده قلیزتر میشه و خیلی خراب میشه باید دیگه حالا دیگه این جنگی که اینقدر اما پاوست رو حالا آره دیگه قراب ده توس رو, رو و اینا دیگه قبل از این اوضاع طوری میشه یه اصلا کاره که قمهش خامد و قمه های دیگر پاک ببود سوزنی باید کس پاک براد خواهی این مرگ سیاهاش میاد پیش اصلا به کلی همه چی رو داغو میتونه ود روستن انتران یه هفت در توران میزنه و میکنه و میسوزه و البته حالا حسندیده نیست یعنی هفر رو زدن ولی حالا قرآن هماسیه که این کاری میکردم دو طرف میدون ارهاد یک نشته بسیار مهمه اینجا بگم حالا به اون شعر اینا میرسیم بیت 1180 نگاه کنیم بیت سده نه هم نگاه کنیم چیزی خارج از این داستان به نظر شما نمیرسیم از این دو تا کله همچون گچ خود را به دار ساخت پرینداز کنونش از پنزه کنید بله احساس دفت پیگی هم نیکرد خواه چو بشنی دفت آسیابین یکی رای بادانش افکن پون قبول کرد دیگه دبیر جهان دیده را پیشان زبان برگوش آدو سخون برخشان دبیر رو میوردن بهش دیکه میکردن و اون مینوشته نخستین که برنامه بنهاده دست اون دبیر به انبر سر خامه را کرد پست تو مراکبشون اون یا اون موادی که باش مینوشتن مواد خوشبو میزدن ولی که اصلا پوست گئی رو پوست مینوشتن که بوی بد میده در چرم و نیست که میدونید نمیدونم که کارخونها چرم تا زیر که از اونگه بد اصلا فقلش نمیچرد هیکی بده خود چرمم بوش بده این است که اضافه برای این اصلا نامهی که مینفته به دست شامیسته باید بروی خوش بده اونها بروی حریر هم که مینوشتن بازم مرکبشون زعفران مثلا بوده، انبر کنش دشته نامه همه برای این بود که بوی خوش دشت. خواستین که بر نابن دست و انبد سر قابل را کرد پس جهان آفرین را ستایش گرفت، بزرگی و دانش نمایش گرفت یعنی بزرگی و دانش خودش رو نشون داد اول همه جهان آفرین رو ستایش کرد این فرمول بوده گفتن در نامه‌ها ها و همیشه میگه این همیشه است جهان آفرین را ستایش گرفت، بزرگی و دانش نمایش گرفت کجا اینکه برتر است از مکان و زمان چهر فروسی اصلا چیز قریب اصفاقا این خیلی مسئله مهمیه ما اصلا چیزی رو بیرون مکان و زمان نمیتونیم فکر کنیم هیچ یعنی این مغز ما نمیتونیم فکر کنه یه وقتی بوده که این وقت این زمان نبوده یا یه بیرون از مکان یه چیزی هست حتی چون می‌خوام فضاپورش بکنیم میگیم کی بوده از خود عالم این گندگی کی بود که تا اون الان را اصلا دنبالش دارن دنبال بنگ و اینا نمی‌دونم می‌خونیم چه بلک هولز و نه گفتن بیگ بنگ و با زیاد دارن تعریف می‌کنن که از این وقت بوده اما کسی که خودش وقتو خلق بکنه ما اصلا تصرفش نمی‌کنه چیزی که خودش مکان و خلق بکنه ما اصلا فکرش نمیتونی که پس وقتی که مکان نبوده کجا بوده اصلا چطوری چیزی که جایی نیست اصلا چطور میشه چیزی باشی که هیچ جا یه چیزی باشی که بیرون از زمان قبل از زمان بوده باشیم این عربارو کانت زده ها اینه که من دارم که ما اول باید گنجش مغزمونو بسنجیم بعد ببینیم که این موضوعی که می تو راجبش فویق کنیم تو ذهن ما جا می یا نه بعد یه ذهن ما دوتا تا باید داشته باشه تا چیزی رو بتونه تصبر کنه یک زمان تو کنه و بیرون از زمان و مکان ما چیزی را نمی تونه کنه بنابراین خدا تصبرش از طریق تفکر ممکن نیست بعد از طریق حکمت عملی از طریق اخلاق و مسئولیت و اینا میاد که باید خدا باشه نه نه عزیز حالا این مطلبی رو که در قرن 18 اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 کانت بهش پی برده بوده فریدوسی چی میگه میگه کجا برتر است خدا بالاتر از زمان و بالاتر از مکان و همین میتونن تنها نمیگه به دو کهی رسد بستگان را گمان میگه کسانی که بسته زنجیر زمان و مکانن که میتونن اصلا فکر اینو بکنی خدا کیه چیه بینید حالا هیچ کلمه میشه در باب خدا گفت که از این مهمتر از این عمومیتر و از این بلندتر از این زیباتر از این خردمندان پردش کجا برتر است از مقاف زمان به دو کهی رسد بندگان راه گمان خداوند جان است و آن خرد مالک جان و مالک خرده خرده او خلق کرده مخلوق که به خالقش نمیتونه که یه تابلو که شون که نمیتونه فکر کنه که شما کی هستیم چی هست خداوند جان از دوان خیرت خیرتمند را داد او فربره بعدم درود خدا بر شاه از او بعد بر شاه درود خداوند گوفال و شمشیر و خود اونجا پهلوانیشو میگه بعد خداوند شرم و خداوند باک باک غیر از بیمه ها توجه می که باک غیر از بیمه باکن ترس ولی یه ترس به خصوصه همین ترسی که از ریختن خون این د... سطح... این میگن بار یعنی احتیاط خیراتمندانه تروای خیراتمندانه داشتن دار که بیم یعنی ترس آدم که میگه در درد برو میان نکنه اینو خراب شده سرمیشه یعنی ترسوه باک خوبه بیم خوب نیست خداوند شرم و خداوند باک یعنی ملاحظه داره سه و کجی دلوداست؟ و دست پاک. این لفنهش مرتبه یعنی دلش از بیداد پاک دستشم از کجی هنوزم کسی دوزیم وزیم میکنه میگن دست کنونی کجی نشدیدیم؟ میگن دست کجی <تصفيق> این از اون مقدر دوره سو بیدار و کجری ها شنیدم پیام از کران پا کران میگه نامی تو رو خوندم پیغامتو شنیدم سو دل زنگه شابه میگه او پیغام شد تمی شد دلت زان که شاه جهان چنون تیز شد با تو اندر نمان ناراحت شدم از این که رفتار رفتاری که کرد پاک شا کار کرد من ناراحت ولی که زگیتی جز از و تخت چه تخ چجوریت خرمنده بیدار واسه من ولی من ناراحت شدم ولی تو چی غیر از تاشتخ میخوای تو تاشتخ میخوای من بهت میدم بیا اینجا هست حاضر ولی که زگیتی جز از تاو تخ چجوریت خرمنده بیدار برو را این همه ایدر ایدر یعنی اینجا تو را این همه ایدر آراسته است اگر شهریاری و اگر خواسته هست ها خوادشاهی میخوای ها مال میخوای همه این و این هست همه شهر توران بران دست نمال هست. همه مردم توران همه مردم کشور توران تعظیم میکنن به تو مرا خود به مهر تو واشت نیاز خواستار مهر تو هستند تو فرسند باشی و گفت پیران که اینم است نامه‌ای که پدر به فرزند نوشتن تو فرزند باشی که من چون پدر پدر پیش فرزند بسته کمر یعنی همونطوری که پدر آماده است که خواسته‌های بچه‌ش رو برآورده کنه من همونطور اومدم برای کار تو چون اونم که کابوس فرط به مهر بر آن یک روز نگذشت که کاری بکنم که ببینی و بدونی که یه روز خاوز با تو این رفتاری که من می نوشتم. کجا من گشایم در گنجو ده است. برای که من در گنج باز میکنه سپارم تو را تاج و گاه نشه هست بدارم تبیرنج عذیت تیش نمی کنم مثل باواد که این رفتار زشت با تو داشته بدارم تبیرنج فرزند و هیگیتی تا مانیز من یاد کار. چرا؟ چند تا؟ برای خب بچه کار هر حال این آدم گفتم. آدم گفتم است. یا آدم بغلادهی بوده. حال ماله داره میلید. داشته میشه. داستان بچه که آدم بی نیاز نمی داشتم یه بچه خیلی خوبه. بهتر. چرا بچه تو کشورم بگذریی در جهان نکوهش کنندم که هان و مهان تو بخواه اینجا رد چی؟ من جواب مردم چی بدم، جواب بزرگان چی بدم، اونا برای سرزنش میکنن که تو نه دیگرش گرش باز این روی دوش یا بگذرد گذشته از این گذرگاه ب... خیلی دوشواره مگر ایزدی باشد آین و فر مگر اینکه کسی یک توز الهی داشته باشه برای این راه پیدا نبی زمین گذار کرد باید به چین میگه اینکه میگم گذار دشواره باره برای اینکه از توران که بگذاری بعدی زمین وجود نداره تو بخواهی اینکه بری بری اونجا باید تارید دریا چین پری. از آن کرد یزدان تو را بی نیاز میگه خدا تو را از این کار بری بی نیاز کرده همین درد بباش و به خوبی بسا همینجا باش و سپاه و دز و گنج من آن و توس به رفتن بحانه نباید جز دریای چین که میگه منظورشی شیع اونجا که دریای نیست چرا دیگه همون, همون سواهیل چینی میگه و اویانوس آرام میگه من اون بره چین را سپاه و دز و گنج من آن توست برفتن بحانه نباید تو بگه این مال این به هستی بعدم پاس یا پدرت آشتی کنی چه بیتا. من که جلوتو نمیگیرم سپاه هم بهت میدم زر و گنجم بهت میدم همه چیوت میدم آراسته و مجهد پس برو با پدرت آشتی کنی چون رای آرادت آشتی با پدرت سپارم تو را گنج و زرین کمر کمرم از یابرد از آرین از وصال پادشاهی بوده ها در به ایران چم این باصفا نبندم به دل سوزگی بر تو را اون من دل سوزی اما حتی من جلورتا نمیگیرم برو نماند تو را با پیدر جنگ دیر این مخالفت تو با پدر تا به این نمیشه بلکه دیگه باید هم میفهمی که عبلهی کرده که شد که پدر پیر شده مگه از از جنگ سی شاید اصلا از جنگ سیر شد دنبالشم هم که همون که آتش آخش اگه شاید پنگ سال ازش بگذاره توس بش. برای آتش ببیند 65، رسد آتش از باد پیری تو را باشد ایران و جمع و سفاظ، کشور به کشور، به شاهی کلاه این تو آورده، چرا آورده این اومده تو چیزش ناراحت بود از ذهنش و پیش با این 65 ما رو خودش اشاره به زندگی برشیم <تصفيق> بله <تصفيق> داستانی سیاهاش نداشت یک کلمه شاهر البته ظاهرش میگه آتش هم از سال دنبال داستانه میگه آتش هم 65 سالش میشه چیز میشه <تصفيق> سوس میشه یعنی کابوس میگه که پیر اما اما 45 سال 65 عدد عدد معینه که آورده این برای اینکه که خودش در اون سن بوده و احساس توستیم میکرده تو را باشد ایران اگر سپاس و کشور و کشور به شاهی کلا پذیرفتم از پاکی از دان که من بکوشم به خوبی به جان و به تن نفرمایم و خود نه سازم گزم نه دستور بدم نه خودم گزم میرسستم در اندیشه دل را ندارم به بند یعنی فکر برد می چون نامه به مهرند در آور چاف به فهمت تا زنگیه زودی برفتن ببندر کمت بس این خلعت آراست با سیم و زر یکی اسب و زرین ستا می گیران بیا آمد دمان زنگیش دیگه باز سود مسئلی چیچی نیست آمد چون از این که تخت سیاهوش رسید چه چون چه رو نام و اینا رو در نقل داستان راسیاب گفته که این نام م ب چی بود چی بود دوباره میگه میگه زنگ آمد هرچی دیده بود با تمام